چاف آاسات صافه ولی ترک داد مثل دل منه که کمما رو یدک داد اینجا قوانینی داره که بی تب سرد نگاه ها میشه بهت از قرض ممکنه آرزو توی حباب بمونه تو وقتی سنگ قبل تو با گلاب بشوره اینجا غریب نوازن به طرز فجی اگه تک به پری میگیرد ترس عجیبی مهمترین چیزی تو باید زنده بمونی ولی ما اون گوش و متشن به خون زیککن سره تا این باشه راهو و صاف برین داش خوره پر سرره منتظه نگاه بذار به چرخه بخونه هنجره خیابون مثل یه است بدون پنجره وقتی وارد شدی نگاهی به بیرون نداری پس یاد بگیر که بمونه سنگ دله سنگ داره بازم سر همه لحظه های من توی خیابون اگه مثل مایی از جنس مایی پس یاد فوش همین بوده قبلا همین نمیمونه تا بعد زندگی یعنی بمونیم تا بمیریم İzlediğiniz için چی می تعبیر میشه اینجا تفریح به چی این که برد رو به طرف تبریک به کی واسه پول تاب داری ولی کودوای تبت فقط هول میدی بیرون کمی دولا لا لا ته خیال باشی زمان زره بیشتر آج یک بیشتر اوج خندت میشه یک ذره نشخن یهو یکی میاد میگه خنجر پشتمه رو صورتش جای پنجن گشتمه همه چی میریزه به هم رسمش کینه بی به این که یارو دستش چیه اگه به ماها بندازن یه نظر همه می بینن تو جممون هر روزی نفر کمه این هست و رس به پس به نسل منه نگو بس کن رس مو هست و دست به قمه باز منو بینی و میگی چه میره میتون تا نباشی تو جمع ما نمیفهمی خو داره بازم میگذره همه لحظه های من توی خیابون اگه مثل ما ای از جنس مایی یا توش همین بوده قبلا همین To your feet. در خوشبختام زیر زیره نمنم نم بارو شاید بتونه به شوره کم از زخم دق دغ هام چون که زندگی نه به بار نه به وقتی که دور و نه حصار نه صدای فردی که بگه بر و جلو و پشت وا پس پسنده میمونم اگه خوش شانس باشه تا چش زدیم ما دیدیم که حبل شدیم جای ننه بابا آسفالتو بغل کنی من خیابون خیابونا نیستم ولی خیابونو بچه‌منو نیست کمترین احتمالی که من بچه‌مو ترک کنم تو تو اشتباهی هر شب کنه. به همین رسم آشنا با سنت قدیم که خیابون داره رو قلم قدرت عجیب عادت میکنی وقتی که هر شب توش پا بذاری اسم ماه تا عبد میمونه روش شادگاری داره بازم میگذره همه لحظه های من توی خیابون اگه مثل از جنس ماهی پس بیاد روش همین بوده قبلا همین نمیمونه تا عبد زندگی یعنی میمون تا بمیریم ما توی خیابو داره بازم اگر سره همه لخزه های من توی خیابو. اگه مثل مایی از جنس مایی پس بیاد پوش همین بوده قبلا همین نمیمونه تا بعد زندگی یعنی بمونیم تا بمیریم ما توی خیابو